رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی بانوم و یاد پروردگار یکتا برنامه از سلام خدمت شنوندگان گرامی صدای امید آدرس اینترنتی برنامه ما www.sidaiaomid.com هستش برنامه رخداد رو در خدمت شما هستیم قسمت سوم باز هم از می میکنیم که دو قسمت هستش که هنوز به بحث اصلیمون نرسیدیم مجبور بودیم یه مقدمه علمی اختر فیزیکی و اخترشناسی شناسی خدمت دوستان ارائه بدیم شاید این برنامه به نظر غیر عادی بود اون دو قسمت گذشته ولی هدف دیگه هم ما داشتیم که شنونده عزیز و گرامی ایرانی به اینجور مطالعات هم مطالعاتی که در واقع به معرفت انسان از هستی و همچنین خالق این هستی می انجامه و تفکر در هستی منجر میشه ما تشویقش بکنیم ما رسیدیم به قسمت قسمتی که یواش دیگه به کره زمین رسیدیم و کره زمین در مرحله شکلگیری بوده. ما برای اینکه بخوایم در مورد تغییرات اقلیمی کره زمین صحبت بکنیم که حیات با اون به وجود اومده یه دوره‌ای داریم که دوره گلخانه‌ای هستش. زمین پوشیده از حالت گلخانه‌ای که الان ما تو سیاره زهره می‌بینیم. دمای بسیار بالا و بسیار گرم و آبها تازه داشتن به وجود می‌اومدن. بعد از اون یه دوره‌ای داریم که دوره یخچالی میگن به کره زمین. حالا البته این دوره یخچالی و یخ‌بندان هم خواهیم رسید چون نیاز هستش توی شکلگیری موجودات جدید و حتی بعد از اون انسان ها و های معاصر ریشه این های کوچک و های بزرگ در تاریخ چه دوره زمینشناسی و چه دوره معاصر ها به تغییرات در خود خورشید خود نوع سوخت خورشید در واقع نسبت میدن به این هنوز نقاط ابهام هستش در مورد این نظریه مثلا اینکه کره زمین حدود 5 میلیارد چه چهارونیم چهار میلیارد سال پیش یه چیز بود یک میلیارد سال یک دوره گلخانه ای داشته حتی یک قطری یخ تو این کره زمین نبوده و بعد از اون حدود این نزدیک 500 میلیون یک میلیارد سال تبدیل به یک گلوله برفی میشه. بله دوره ی و... برفی معروفه. بله. اصلا گلوله یک دیگه مگه گلوله برفی میشه این چیزی جز تغییرات در تابش خورشید نیستش. ای دکتر این دوره کمایم میگن 700 میلیون سال بلد. طول حب... کشیده. چیز دو دو دو حد اکثرش در واقع یک میلیارد ساله. بعد اون چیزی که در واقع هستش یه دوره‌ای هست که بهش دوره یخچالی میگن که تو این دوره در واقع بخشی از زمین پوشش یخ دائمی داشته و یه دوره یه قسمتش هم که اون قسمت استوایی در واقع پوششش کمتر بوده یه گلوری بعد میشه این حدود دو میلیارد چهار میلیارد تا دو ممیز یک میلیارد سال پیش هستش که روند تغییر آب و هوایی کره زمین از تبدیل شدن به گلوله‌ی برفی آغاز میشه یه چیزی حدود 300 میلیون سال هستش و تقریبا میرسه به حدود 360 میلیون سال تا 260 میلیون سال پیش یه چیزی حدود 100 میلیون سال پوشش گیاهی گسترده کره زمین داره تو این دوره هستش که ما اوج دوره به وجود آمد حیات هستش حالا این حیات چه جوری به وجود اومده این حیات برخی ها میگن از طریق یه سری کورات به وجود اومدن از سر... از یه سری کورات یه سری از طریق سنگ ها از طریق برخی سیارک که به کره زمین برخورد میکردن به وجود اومده در واقع اینجا یک بر... نقدی هست از, از میخوام میمونه کلام شما بفن. بلاخره ما یک نظریه هست دیگه میگن همراه سیارک ها درست. که به زمین خوردن مقداری از این عناصر عالیه که دارای حیات بودن اومدن و اینجا تکثیر شدن هیدروکرمون ها هیدروکرون. حالا جدا از اون اصلا مثلا میگن عامل انتقال حیات ممکنه ممکنه سیارک ها بود یه نقدی به این نظریه وارده بله خب بلاخره همین سیارک ها یه جایی بودن دیگه درسته بل. اونجا هم یه شرایطی بوده بلاخره حیات یه طوری به وجود اومده دیگه چطوری ب... خب حالا همون طورش مثلا بعضیا میگن خب همون طورش کنار چشمایی زمین میتونه پدید اومده باشه دقیقاً حتما که نبوده جای دیگه اومده باشه بله دقیقاً خواهش بله اتفاقاً برقی هم ریشه این حیات رو توی پلانکتون‌هایی که توی کف اقیانوس‌ها به وجود اومده بودند در واقع میدونن و یه چیزی حدود نزدیک 100 میلیون 200 میلیون ساله تو این فاصله این یعنی چیزا 250 میلیون سال پیش که در واقع حیات کاملا نابود میشه حیات که نه اون میگم 90 درصد موجودات روی کره زمین به بر یک برخورد سیارکی 250 میلیون سال پیش نابود میشن بله نابود میشن تو این فاصله که بعد آخرین پیشروی یخ که در واقع گفته میشه بعد از دوره‌ای هستش که مهرداران که سلطنت یک سری موجوداتی که ازا به ما دایناسور ها نان پر نمیشه که حالا این دایناسور ها چطور میتونن میان و یه دوری بسیار طلاید برای خودشون دارن یه چیزی نزدیک که پ میلیون حد نزدیک 100 میلیون سال در واقع تخمیم میزنن حضور و سلطنت اونها بر روی کره زمین رو که یک دوری بسیار بلد. فرمان روایی رده خزندگان بلد. رده خزندگان که اونها هم در واقع براساس اساس یه فرضیه که هستش 65 میلیون سال پیش به خاطر یک برخورد یک سیارک هستش که یکی از عوامل یکی از عوامل بله حالا اینکه این سیارکی که البته میگن اون سیارک حدود 10 کیلومتر در واقع قطر داشته بله 8 تا 10 کیلومتر آره اینکه مثلا اینکه چنین سیارکی چنین قدرتی داشته به وجود آورده خب بعدش میگن چون این بلاخره وقتی که حرکت میکنه توی قاره آمریکا به یوکاتان مکزیک برخورد میکنه اون گرد و غباری که از برخورد برمیخیزه قسمت اعظم جو کره زمین رو در واقع تبدیل به گلخانه‌ای میکنه و تنفس, تنفس تغییر اقلیم, اقلیم تغییر, تغییر اقلیمی بسیار شدیدی به وجود میاره که اون در واقع باعث از هایی تو شما رسمش. موافق هستین این نابودی دفعی نبوده دیگه بله اصلا منطقی هم نیست برد. که به یک دفعه مثلا به یک باره یک مثلا بمباتومی مثلا یک بمباتوم مانندی بیاد مثلا بر اساس برخورد بر شکلی که چون ببینید حتی اگر ما تصور بکنیم چون اون سیاره که تو ده کیلومتر بوده یک قمری من کری ما هم حتی اگر بخواد چیز بکنه به بر کره زمین بخ... برخورد بکنه و کری زمینی که نابود نمیکنه که برد. تنها چیزی که میتونه کره زمین نابود کنه یه چیز اندازه کره زمینه مثل زهره و یاد زهره که حرکت بکنه بخور چون ش... ماننده هم هر دو در واقع غبار میشن پودر میشن. متلاشی میشن،, پودر میشن چون وقتی که یک سیارک با ده برخورد میکنه پوسته رو فقط میتونه تازه به اون جبه هم نمیرسه چون خود کره زمین که یک گلوله هست یه پوسته هست زیر پوسته یه جبهه‌ای هست که متوسط 32 کیلومتر فقط پوستشه شه. اصلاً بعضی بله. متوسط, متوسط. بعضی مثلا دو اه... کوه و دشت‌ها زیر کوهها، ریشه کوهها بل... کوهها و دشت‌ها 50 کیلومتره، کف اقیانوس‌ها نزدیک 20 کیلومتره. با. بعد از اون مثلا جبهه بست که حالت مذاب داره. بعد اون جبهه هست است که از آهن و نیکله بله که بسیاری اون خاصیت مغناطیسی کره زمین، جاذبه کره زمین رو حاصل همین آهن و نیکلی اون هم یکی از عوامل پدید آمدن بلده. و حفظ حیات در روی زمینه تساشؤت خورشیدی رو بلده. منحرف می‌کنه به دو قطع. دقیقاً به دو قط منحرف می‌کنه و باعث میشه که در واقع این حیات توی کره زمین در واقع شکل بگیره اما تو که شما فرمودید ما نمیتونیم بپذیریم که نه اون حیاتی که 250 میلیون سال پیش در واقع تو کره زمین نابود شد 90 درصدش نه اون حیاتی که و 65 میلیون سال پیش حیات و سلطنت بلا منازع در واقع دایناسورها و خزندگان توی کره زمین نابود شد اونها دفعی نبوده قطعا یک روند چندین میلیون ساله طول کشیده که بد. این نابود بشه قطعا تغییرات آب هوایی تغییرات اقلیمی تغییر در یخ بندانهای کره زمین بوده که در واقع باعث شده که این از بین بره دانشمندان آقای دکتر میگن این انقراض دایناسورها آغاز شده بود بد. این سیارک باعث تشدیدش شد درسته؟ و در دوران کرتاسه بعد دو میلیون سال پس از برخورد این سیارک دیگه تقریبا دایناسور رسیدن به مرزی که بودن اما دیگه امکان جفتگیری نداشتن تو یک فضایی خیلی ای بودن و این دیگه باعث نابودی قطعی شد نابودی کامل اونها بله. شد بله حالا مسائل شاید تغذیهی و خیصایی بله. هم هستش همه داشته. درست داشته فقط اصلا همین یکی از دلایل همین همین مهاجرت هایی که ما داریم بهش خواهیم رسید غذا بوده حوامل اقلیمی, اقلیمی برد. نقش داشته بعد مسئله ای که ما میخوایم در مورد یخ آخرین یخبندان هایی که در واقع به وجود اومده توی کره زمین ببینید یخبندان هایی که توی کره کوره زمین معمولا به وجود میان یکی سری دوره تاریخی در واقع دوره های نسبتا منظمیه نسبتاً منظمی نامنظم هستش نامنظم نیست نامنظم ولی یه چیز جالب حالا من خدمتتون تو میگم از دوران یه فرضی است که ترماز ثابت, ثابت شدم هست از دوران در واقع مختون نص شدن دایناسورها تا حدود دو میلیون سال پیش یخ های دوری چهل هزار سال یک بار بوده بل. از دو میلیون سال پیش به این هر 100 هزار سال یک بار و خیلی ها تو این دو میلیون سال اخیر که این نسل انسان یا شبه انسان اون موجودات که شبیه انسان ها تا به حال دلیلش همین زیاد شدن این دور است که این هم دلیلش باز هم تغییرات در خود خورشید هستش که اون هم طوفان های خورشیدی که طوفان های این لک های خورشیدی بله بله لک های خورشیدی اینا دوراش لده. 11 ساله های دکتر بله 11 هزار سالی یوز نه 11 هر 11, 11 سال یک بار لک های خورشیدی افسایش پیدا میکنن اون... بعد اینا دوره تو دل دوره عنا یعنی بلد. دورهای بزرگتری رو تو... هی شامل میشن هی شامل میشن و در واقع به وجود میان ولی نوع بشری که ما الان به این شکلی که مثلا من و شما شنوندگان از که در واقع میشنون در واقع نوع بشری که دارای عقل هست، چیزی تحت وان عقل و مغز هستش، شبیهشون حتی تا 5 میلیون سال پیش هم ما داریم فسیل‌ها هایی که شبیه اینها بود حالا برخیشون مثلا حالتی هستش که زانوشون خمیده‌تر هست، سرشون کوچیک‌تر هست، دستاشون کوچیک‌تر هست والا شبیه میمون ها. منظور از عقل اینجا چیه های دکتر یعنی منطق و تکلم که اینو شامل نمیشه چون منطق و تکلم متاخر تره خیلی متاخر, خیلی متأخر. حت در حد چنده هزار سال اخیره بل. تکلم و در واقع منطق بیشتر برای معیشت هستش no. مثلا کم کم استفاده از ابزار شده. ابزار آتش مثلا به وجود اومد مثلا شکار نوع جده شکار چون شکارشون اون موجودات شبیه انسانی که ما میبینیم حتی پنج میلیون سال پیش نوع شکارشون با شکار موجودات شکارچیایی که ما الان داریم میبینی شکارچی مثلا گربه‌سانان متفاوته اون موقع حتی متفاوت بود حتی چون به این ش... موجودات شبه بشری که ما انسان نما انسان نماها, انسان نماها. این دیگه شکار بوده اصلا گوشتخار بودن نوع باش از اول ما مام همین الانم هم گوشتخوار درسته که تبلیغ میشه گیاهخوری چیز خوبیه و فلانی اینا و حالا موضوع بحث ما نیست ولی نوع باش گوشتخار همه چیز خاره همه چیز خوره ولی بیشتر گوشتخوار بله به به شکار بیشتر بشتر. بشتر بشتر بشتر در واقع تمایل داره ولی نوع شکار حتی همین انسان نماها هم با موجودات شک... شکارچی که الان با شکار در واقع به حیات خودشون ادامه میدن مثل شیرها مثل ها متفاوت بوده از همون اول یعنی منظور شما اینه که به یک دوره تکاملی این برنامه‌های شکار از حالت غریزی مثل بل... گله‌های شیر شده... کم کم پا گذاشته به مرحله‌ای که برنامه‌ریزی غیر قریزی و دلوقتي. ارادی درباره باره شکار دلوقتي. داشتن نقشه شکار طراحی میکردن دلوقتي. حالا به صورت ابتدایی به صورت ابتدایی خب حالا شاید ما این مسئله رو مطرح کردیم ذهن شنونده بره به نظریه تکامل داروین بله یه معتقده که نوع بشر نوع انسان هم در واقع ادامه نسل مثلا میمون هاست چارز, نسل روبرت مثلاً... سار... چارز روبرت داروین که فکر کنم ما چندین برنامه سر آی باشیم. خدمت آهای داروین باشیم و سر شنوندگان از به درد بیاریم و یه مدعای دیگه هم که این برنامه داره و حالت پژوهشی هم داره چون دوتا حالا پژوهشگر روبروی هم نشستند که میخوایم اصلا این رو رد بکنیم درس پس میدونم بزرگ باریش و با هم دیگه میخوایم اتا خودمونم رد نمی کنیم. اون ردیه هایی که بر علیه این در واقع نظریه به وجود اومده در دنیا فقط هم رد از دید خودمون از دید دین و مذهب و ایدولوژی خودمون نیست رد از دید تمامه که چه گرایش های علوم چه تمام گرایش های دینی و تمام گرایش های فلسفی بحث بحث بل... علمیه بله بله بل... ما... بل دقیقا ما د... این رو می‌خوایم به چالش بکشیم که این اصلا این نظریه ریشهش از کجا بوده با چه ابزارهای علمی در واقع قابل نقد هستش من فکر کنم برای شروع دیر باشه ما بریم فکر بخش بله. قسمت چهارم دیگه من در پایان بخش میخواستم یه خواهشی خواهش بکنم هم خدمت شما هم خدمت گردانندگان برنامه رخ داد من میخواستم خواهش کنم ما بحث های بخش اول دوم سوام شاید اخترشناسی و حیات بلد. و اینا رو به صورت گذرا اومدیم و توضیح دادیم ا از این به بعد رو اجازه بدن برنامه از حالت خطی خارج بشه دقیقا. و ما بتونیم رفت و برگشت کنیم دقیقا. یعنی اگه جای نیاز بود درباره تکامل توضیح بدیم برگردیم دوباره به 85 و سال پیش و پید آمدن پسانداران رو دوباره بتونیم توضیح بدیم بقید. بریم بیایم تا این موضوع تبعین و روشن بشه. دقیقا. اصلا این متد علمی اصلا همین مثلا هم همینه خیلی متشکریم از ضور گرب شما و حوصله شهرونگانی جوانان عزیز قسمت سوم برنامه هم اینجا به پایان میرسه شما رو به خداوند متعال میسپاریم خدا یارو نگهدار خسته